اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صل الله علیه رسول الله و آله طیبین و طاهرین المعصومین و لعت و دارمت و علا عدایه مجمعین اللهم افرنا جمعی المشتقلین و الحمد رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت بحثی که مطرح میده افتدان راجبه خلق لهیه و استدلاع با یه مبارکه فری و ریعون خلق الله و عرض شد که بعضی از معاصرین خدا رحمت اللہ هوای سیار شیط بزرگ باری بود خودمان بایشون بودیم. و زبان الله علیه ایشون یک کتابی نوشتن اصرار کردن که خلق الله همون خلقت مراد نه جهت محنوی که دین الله باشه و اطلاق داره شامل مثل حللهیه هم میشه غایت ما اوناست اگر چیزی از این زواهر جایزه به دلیل و الا هر چی شک کردیم به اطلاق اونم جایز میسه. این انصافا این مطلب و این برداشت نگداریا اصلا فی نفسه هم به نظر ما اصول داره حالا غیر از اینکه تخصیص اکثر لازم میاد به اصطلاح اونرا سن از اینصافا مثلا بگیم سنگی از سنگی بر نداریم درختی به درختی پیوند نزنیم مثلا از فیلم مثلا به این که عضوی به عضوی بعضی از پیوندهای بدن یه قسمت بدن میگن به یه قسمت دیگه مثلا پیوند می جراحی میگون کنن بگیم تمام اینها حرامه الا اونهایی که مثلا انصاف انصاف قضیه خیلی مشکل یعنی این تفسیر بسیار تفسیر است و خیلی تفسیر دور از ذهنیست اصولا فلیوغیان نخب مخصوص آمرن این استناد به یک عمر شیطانیه این که انسان موی سرش کوتاه میکنه که یک عمر شیطانی موی بدنشی میکیبه زیر وقلاشه پاک میکنه یک عمر شیطانی نیست درختی رو به درختی پیبر میزنه مثلا پیبر میزنه برای که میوه این درخت رو زدگتر بشه شینتر بشه کذا بشه این جزوه عوامر شیطانی نیست ولا آمورن نهام هم داره ولا اضلن نهام این رو گمراه م به صورت یک مفهوم قرآنی هست و اون این که ماذا بعد حق الا غلا. اون غلا بعدل الحقه این که شما درختی رو به درختی پی بند دید این که حقه یه جزء زبایی نیست اصلا احتیاج به بحث تخصیص اکثر نزاریم بله باید ایشون اولا و به جای این حرفا باید دنبال ما به لحاظ کار خود داریم ما راه درستش ابتداعا اینه که ببینیم آیا روایاتی که در تفسیر آیم برای آمده از کردیم اون چیزی که ما الان داریم مجموعه روایات مرسله الان یک دانه روایات مصند هم در این جهت فعلا نداریم و این مرسلها ها به این ترتیبه بیشترش در کتاب علیاشی است یکیش مورسلن در مورسل محمد بن یونس ان جل نه ابی عبدالله که این دو تا ایسال داره و اونجا هم امر الله داره. از به ترتیب بگو بترتیب برتر بخوام بگی یکی هم در این کتاب تفسیر علی بن رضی است روایت نیست امر الله داره. در کتاب تفسیر عیاشی ام امر الله به ما امر به داره باز اونم باز مرسلن باز در کتاب عیاشی از تفسیر جابر بن ازید جوفی دین الله داره و هر دو روایت مرسلنه دین دین الله از امام صادق و امام باقر مرسلن در تبیان مرگون شیخ طوسی واقع شده پس اون چی که ما الان داریم متاسفانه روایات مرسلی در درجه اعتبارش برای ما الان روشن نیست البته خب متعدده انصافاً تعددش رو نمیشه انکار کرد معارض هم نداره چون من از خدم یه ذهنیتی بود که اگر ما یک روایت درجه دو هم داشتیم در یک مکبی قبول کنیم اگر معارض نداشته باشه، نه اون کنیم من اسمش اصطلاحاً اصطلاح بنده اساساً اصطلاح نشینید در کتاب، کلمات مثلا آیه معلومه دیگه نه نه اسمش میشه حجیت متوسفه یعنی نه دائما حجت نه دائما حجت نیست چیز وسطیه و عرض کردیم تا یک عده زمانی مثل مرحوم علامه در کلمات علامه هم آمده حدیث حسن رو از این قبیل می‌دونستان ما الان قلو نمی‌کنه الان من اصرار دارم مثلا مرحوم استاد ما آقای خویی خراراً در درس دیگه تعبیر صحیحه نمی‌کنن گفتن معتبره معتبر فلان چون ایشون هر این بود موی ادله حجه خبر داریم خبری که داری این خصائص باشه حجه یا اون ادله شاملش میشه میشه معتبر یا نمیشه میشه غیر معتبر دیگه حسن و ضعیف و و قوی و نمی‌فهمه این حرفا هیچ فایده نداره مسترب و معلول و معطل و نمی‌دونم اینا هیچکدوم کارساز نیست این اصطلاحات که البته اولاً 4 تقسیم اصلی گذاشته در مسئله درایای معرفت انسانی که از اتباع اهل سنت گرفته 4 تا تقسیم اصلی است 28 تا تقسیم قیدت اصلی فری. البته تقسیمات اصلی و فری همش فی ما و فی ما قبل در محله کلام و مثلا تفسیرش هم محله کلام مثلا صحیح یعنی چی حسن یعنی چی خود اونها محله کلام نه اینکه و نه محله کلام بین ما بین بزرگان اهل سنت که مبدعی این اصطلاحند این اصطلاح از اواخر درن دوم شروع شد در قرن سوم که به خودش رسید از اون وقت بین اصحاب ما از قرن هشتم هفتم هشتم شروع شد که توضیحش جایی دیگه این اصطلاح فی نفسه گیر داره نه اینکه حالا هم بین اهل سنت گیر داره هم بین علمای ما گیر داره بعضیا پنج تا کردن تقسیم رو بهش اضافه کردن بعضیا چهار تا کردن حالا من وارد اون بحث نمیخوام بشم من ما خودم میفهمم این بحث همش نتیجه نمیvida شده معلول و مستره و نمیگم معزل و مؤزل و اینا رو اصلا ما احتیاج بهش نداریم مهم این است که حدیث یا عدله حجیت شاملش میشه میشه معتبر یا نمی میشه غیر معتبر ما دیگه ما بین هما درجه نداریم دقت اما این همه تاریخ اصول ما یا فقه ما نیز اشتباه نشه مثلا علامه عقیدشی بود که اگر حدیث حسن باشه یعنی امامیه ممدوح باشه اما توثیق نشده این حدیث اگر معارض نداشت حجت معارض داشت نه صحیح رو میگه مطلقاً حجته معارض داشته باشه یا نداشته باشه خب یک خود تقسیمه به صحیح حده اصلا دلیل داره یا نداره از کدر در بحث اصول قبلی در حقیقت یه مقداری بحث رو چون امروز کامل نه که اصول پرداره یه مقدار حرکت اخباری ها و کارهایی که ملا محمد امین استرابادی انجام شد یه مقدار انصافا باید گفت عکس عمل این تقسیم بندیه بود که علامه بود کرد خب اینا هم نمیگفتن چه بر این تقسیم چی گوی تقسیم روز سیو هست از کجا اومده تو روایات اومده بزرگان گفتن چه چه وجی داره شما یه وجه اعتباری یعنی وجوه اعتبار ولیو غلطه داره اون غلط بوده ارزشش نداره این قضیه شما ارزش بعد از این حجت هست مطلقاً اون حجت هست متوسط حجت مطلق چه تو متوسط یعنی چه؟ چه معنی داره حجت متوسط؟ یه مقدار مشکلات اخباری ها یه مقدار مشکلات اخباری ها برمیدش این تقسیم بندی ها که اینا ریشه درستی نداره اساس درستی نداره نمیتوانیم روایات اصحاب مخصوصای نهاریت و درست هم که اصحاب ما دل دل‌های فراوانی خوردن به چه خونه دل این میراث‌ها رو حفظ کردن اینا رو با این گفت که این اغیانوس بزرگ رو با یک تنابی که مثلا چهار متره نمیشه اندازه گرفت این اقیانوس رو با این چهار تا اصطلاح حدیث صحیح و حسن رو یکی رو قبول یکی که قبول نکنیم با این کارا نمیشه انجام داد حالا البته دو طرف مطلب کمی بالا و زیاد و افراط و تفریط داره که حالا جاش اینجوریه پس بنابراین ما الان حدیثی که داریم مجموعاً مجموعا اون به طور کلی از امام صادق به عنوان دین الله داریم از امام باقر نداریم یا با به عکس امر الله را از هر دو امام داریم شیخ توسی هم به هر دو امام دین الله نسبت داده الان ما از هر دو امام در بید از کتاب تبیان شیخ طوسی نداریم ولو مرسلن کلش هم مرسله اما معارض هم نداره دقت بکنیم مخصوصا اگر در نظر بگیریم که این مسئله از اهل صحابه محل کلام بوده اده از صحابه تغییر خلق الله رو به اخصاق با قول خودشون یا خسا اخته کردن تفسیر کردن اده از صحابه این وشم و خالکوبی و وصل شعر و وشم و وشر و وشر از کن با را آخرش واو و شین و را به معنی تیز کردن دنگونها مثل این سفید کردن دنونها که الان با یه وسائلی انجام میدن این رو وحش میگفتن بله این رو استلاحاً وحش میگفتن اون وقت در کلامی که از ابن مسعود نهار شده این انابین رو حرام دونسته به خاطر اینکه تغییر خلق الله المغیرات لخلق الله روشن شد با در نظر گرفتن جبه مسئله از عهد صحابه تا تابعین چون در تابعین هم بود تا فوقهای بعدی و اون چی که از امام و صادق سلام الله علیه ما فعلا در مصادر ما متاسفانه مرسلن وجود داره فقط تغییر دین الله یا امر الله این شواهد رو ارز بکنم ممکن از کسی دیگه این شواهده که جمع بکنید تفسیرش به تغییر خلق الله خیلی دیگه روشن نباشه البته باز اگه بخواییم خیلی ملاناقتی بشیم اصوات حجیت شرعی که روز قیامت بتونیم جواب بدیم انصافا با این مقدار از روایت مرسل ارز کردیم مثل عیاشی مشکل مرحوم عیاشی دور بودن از اوسات علمیه ماست چون در سمغن بوده در قوم خراسان و قوم و مثلا قوم و کوفه و بغداد و این مراکز علمی ما نبوده ایشان لذا ارزش اون آثار ایشان هم به لحاظه به سلام مستری و هم به لحاظ به اصطلاح متن و جاه دیگری که هست یک مقداری محل تأمل میشه ولی مرد بزرگوار است انصافا فوق الاده است و خیلی هم کسبه اطلاع منابع بسیار فراوان و دست اول در اختیارش بوده که حتی دست بزرگان دیگه نبوده این نفران در ارزیابی اونها با اینکه تا چه درجه اونها حجیت این راجع به این قسمت پس بحث اساسی رو باید روی این قرار داد که او یا تغییر دین الله امر الله به ما امر به من اذكر در کتاب تفسیر این کتابی که اسم تفسیر این رو می هست امر الله هم. این امر الله ب... یعنی امر الله به ما امر به این خیلی دقیق تره یعنی امر الله به ما امر به چون امر الله یکی عالم امر در مقابل خلق خب این که میگه فعل وردن خلق اللهی که برای عالم امر میگیم و اصولاً ولا آمورن نه من به عباد امر میکنم هم برمیده به عباد بندگان. اصلاً نه شیطان میتونه تو عالم امر الهی تصرف بکنه نه عباد چیم بدرتی گارن اگر خلق الله رو تفسیر کنیم به امر الله نه عالم عمر که خلاف ظاهره نه اون آمرش میتونه چی این کار بکنه نه معمورش میتونه چی این کار بکنه و لذا احتمالاً در این تفسیر آمده امر الله به ما امر به این امر به یک مقام تشریف مقام جمع از اون طرف هم خلق الله که خلق خب که واضحه اگر بخوایم بین این دوتا اونم لآمرن نهون چون من بندگان رو امر میکنم این اگر بخواهیم جمع بکنیم به اصطلاح امروزی به استلاح بخواهیم به لغت امروز معناش بکنیم این معناش اینه که بعضی از واقعیت های همه واقعیت هایم که شیطان نمیتونه عوض بکنه بعضی از واقعیت ها ولو واقعیت دارند. شیطان میتونه با ایها ذاتی به انسان با اون خبر درونی نشیاتین لیوهون الا اولیاغه شیطان با ایها ذاتی میتونه کاری بکنه که انسان اونها رو تغییر بده واقع هست اما حق نیست او دقیق یه دفعه چیزیست که اصلا شیطان نمیتونه تغییر بده. فقط اون قل نال النار کنی و سلام. نه شیطان، جبرئیل هم این چیز تغییر بده. و لذا وقتی که این دواز واسه توری که من درم چهرسولان انبیاء مرحوم را مرحوم راوندی سیاسنده که جبرئیل و حضرت ارسل کرد علک حاجه فقال الله ما بین منجنیق تا اون کوه آتش که درست کردن. جبرئیل هم خدمت حضرت ایرانی علک حاجه قال اما الیک خلاق نه چون قول نالندارم اشاره به همینه این فقط قدرت الهی جبرئیل هم قادر برای این نبود چه رس به شیطان یه چیزایی هست که از اختیار کل خارجه منحصره به اراده الهی است. اونا هم شیطان نمیتونه تحویل بده اما یه چیزایی هست که در نظام طبیعت هست خوب دقت بکنید این تو نظام طبیعت هست فرض کنید شما آتشی رو بگیرید خونه کسی رو آتش بزنه این واقعیت نه که واقعیت نداره اینکه درو خیالی که نیست اما حق نیست ظلم این بلا آمارنه همفره غیرون خلق الله نهایتش که جمع بکنی مزد اینا میتونن خلق خلقت الهی و تکین رو عوض بکنن لکن این جابجا جا بکنن تغییر بدن غیرش رو بیارن غیر در اصطلاح در مفهوم افرادیش یه چیزی که او نباشه غیرش رو بیارن اما این به امر شیطانه و چون تو خود همین آیه داره بله ولی نه نه من داره گمراه میکنم این امر شیطان حق نیست ما لا بعد در حق الا زلال این, ز... این تفسیر همون زلاله پس من حیث المجموع این طور میتونیم از آیه مبارکه در بیاریم که شیطان دستور میده انسان تصرفات رو در تکوین و در واقعیت بکنه اون تقییر هم هست اون خلال تجمیره این تصرفات این نحوه تصرفات به جایگزینی نیست نحوه تصرفات به دگرگونیه ما یک جایگزینی داریم اون لا تبدیل لخلق الله اون جایگزینیه یک دگرگونی داریم یوغیران لخلق الله اما این تغییر به امر شیطان این تغییر حق نیست و زلاله دقت بکنیم زلال یعنی چیه حق یعنی چیه یعنی این تغییر چیزی نبوده که در اصل نهاد این طبیعت بوده در نهاد این وجود بوده حالا در بعض از روایات اهل سنت هم آمده در تفسیر آیه هم آمده در کلمات اصحاب ما هم آمده این آیه فری و غیرون خلق الله با اون آیه فطرت الله لطی فترن الناس علیه لا تبدیل لخلق الله ذالک الدین القیم با اون آیه جمع کردن اونجا هم بعد از خلق الله دین آمده لا تبدیل لخلق الله ذالک الدین القیم به اون آیه بغرینی اون آیه تمسک کردن گفتن مراد از خلق الله البته در اینجا تغییر خلق الله در اونجا تبدیل خلق الله خداوند متعال میفرماید ما این نهاد وجود رو در نهادی قرار دادیم اشیاء رو حقایق رو که اینها خودشون یک راه طبیعی دارن که غیر از اون هم نداره جایگزینی نقد به نظر میاد بدل نداره خوب دقت بکنیم به اون دعام از کردم الا تستبدل بی غیری نمیگه من انجام بدم کسی غیر از من انجام نده یعنی دو جور از من فقط این کار خیلی رو کسی نکر نه میگه چون این دوای نکته ای داره چون خداوند قانونش اینطوره که باید کار خیر انجام بده. اگه یه مسلمان به یک یتیم نرسی، ممکنه یه یهودی بشه، ممکن یه مسیحی یه کمونیست باشه. خداوند متعال که در نظام وجود نقایص ایجاد کرده، مکملهای هم برش قرار بده. اینه که از خدا میخواد که من رو مکمل قرار بده. کسی دیگه به جای من نباشه. نه اینکه نه، کسی دیگه نه. چون نمی‌شه اون باید بشه. اگر کسی کم داره مکمل هم هست استبدال جایگوزینیه تغییر دگرگونیه اون این که کار شیطانیست دگرگونیست نه جایگزینی لا تبدیل لخلق الله ظالک الدین و غیه حالا این اگر ما بخوایید مجموع این دعایی رو با هم دیگه جمع اولا قبل از اینکه که حالا من تو اینجا بگم قبل از اینکه وارد این بحث کشم جمع بین دعایی یک نکته قانونی رو عرض بکنم بعد بیایم به مقام جنابعالی خب خوب اون رو میگفتیم بعد وارد این جمعه شدیم اول این نکته قانونی من عرض کردم کرارانم نرارم و و یه مطلبی هست خیلی آثار داره در فقه در اصول آن هم که بحث اصول بود داشتیدون دیدن تو بحث‌های پدرم داره تفسیر کردم عرض کردیم که تقسیماتی برای حکم هست همین تقسیمی که الان خیلی شایع حکم ارضی انشایی میمونه کذا که در کفایه آمده و بعضی‌ها گفتن بعضی‌ها جابجا کردن عبارات و کموزیات ما کردیم تقسیمی که ما داریم به ذهن ما حکم یک تقسیم بیشتر نداره اون مرحله انشاء حکم جعل حکم این که حکم اختیاری این هم چیزی نداره حکم یک مرحله بیشتر نداره که اون مرحله جعل سه چیز داریم اینا مبادی جهنم ظاهرا اونا رو حکم قرار میدن یکی مرتبه ملاقات دو مرتبه حب و بغض که مولا طبق اون ملاکات بارش حب و بغض بیاد مثلا مصلحت باشه حب بیاد مقصده باشه بغض بیاد سه همین اراده و کراهت که از کریم این اراده و کراهت هر دوش تشریعی هستند تکوینی نیستند یعنی بخواد که کسی انجام بخواد تحققش رو بخواد این کار رو این اراده و کراهت البته تکمیلا معقول داره جامعه ما به تکمین تکیه اونی که مربوطه به اصول ماست ماج جل تشریعی بعد جل جل یکیه اونا حکم نیستن مثلا برداشتن بر ملاکات گفتن حکم اختیاره اونا حکم نیستن ملاکات هم چند بالا هست که این تفسیر خود بنده است نگین فرض می آید لاینا و من کار الان در اینجا ندارم اون برداشت خودم رو عرض می کنم هم عبارت از امور واقعی که که ساز جل از همین جا فرقش با واقعه واقعه اونیست که خودش بی نفسه لحاظ میشه مثلا این دیوار مستقیمه ای امر واقعی است اگر این آمد زمین ساز جعل شد که چون مستقیمه به شکی بده اگر مستقیم نبود تکی مثلا اون میشه ملاکات ملاکات امور واقعی هستند لکن امور واقعی که زمین ساز جعلن این نکتر خوب مثلا ما ما ربو که به ظلم دل عبید این امر واقعیه خب خدالا زلم نمیکنه اصلا سلب حقی از کسی نمیکنه دقت فر اما تا فقط میاد این امر واقعی این بحث توحیدی است بحث کلامی است فقط به این نگاه میکنه یه دفعه نه میگه من که حالا ظلم نمیکنم پس اگر جنگ قرار میدم جهاد قرار میدم خمس قرار میدم زکات قرار میدم هایی که برای احکام منه تو اینا هیچکون ظلم نیست شما خیال نکنید زکات پول میدین ظلم این ظلم نیست خمس پول میدین این زمینه احکام منه خوب دقیقه بکنید اگر این رو زمینه ساز احکام بود میگیم ملاکات اگر زمینه ساز نبود فی نفسه بود اسمشون میذارید واقعی این فرق بین این تص... تصور بنده این ملاکات بعد حب بعد مسئله اراده کراهت بعد مسئله جمع سه مرحله بعد اینا حکم نیستن مرحله بعدی ابلاغ انظار به تعبیر قرآنی ما كنا معذبين حتی نوء اثر رسولا بعث رسوله این ما اسمش نمیشه فعلیه مرتبه بعدی وصول به مکلف البته الان وصول مکلف بیشتر نظر ما اون کبراس خمر حرامه اما تشخیص صغرا الان بیشتر نظر ما نیست این خمر حسونه اون بحث دیگه چون مک... تنجس این مرحله دو تا میخواد کبرا و صغرا ما فعلا در اصول مبحث اولی شما شرح میکنیم مرحله بعدی اسمش شما میگذارین تنجس مرحله بعدی هم امتصال این شد هفتام این هفت مرحله رو خوب در نظر بگیرید مرحله بعدی که میگیم تن... مرحله به اصا است که به برا... بلاز میاد مثلا اگر اسیان کرد شلاغش میزن اگر اسیان کرد جهنمش میگرن این آثار این جدون حکم نیست مناطقه حکم نیست. این دیگه است که بر مقام امتصال و اسیان اطاعت و اسیان مترتب میشه این یک مطلب یک مطلب از کردید در بیانات و قرآنی در بیانات پیغمبر اکرام اون چه که ما داریم تعابیری که وارد شده عدبیات خانونیش یک مشکلهی که درست کرده الان مخصوصا الان در زمان ما مخصوصا بعد از فضل به انقلاب کبیر فرانسه بعد دوره دارت ماره و قول بعد از روحال قوانین منتسکیو یه بحث کلی در دنیا قانون است که اصلا یکی اشعون قانون باید سریح باشه ماده قانونی همیشه باید واضح باشه سریح باشه توش مجاز نباشه توش کنایه نباشه کاملا روشن باشه جای ابهام نداشته باشه نباید به گونه ای باشه که ابهام ایجاد کنه تفسیر بخواد تفسیر نباید تفسیرپذیر نمیشه تو یه قول قوانین مونتسکیو یکی از چیزایی که خیلی روش اصرار همینه تو قوانی این الان فرض کنید 2300 ساله که در دنیا شروع شده این دیگه جزء مسلماته یعنی الان هر کسی در قانون کار میکنه این دیگه جزء الفبای قانون‌گذاریه دقت می‌کنید وقت ماها الان خاطر مثل ماها یا نسل دانشگاهی ما یا غربی‌ها وقتی می‌خوام بیان با قرآن یا با سنت بررسی بکنم با همین ذهنیت الفا صریح روشن ابهام نداشته باشه مجاز نباشه کنایه نباشه تمام حدود قانونی جزاء کیفر همه کاملا این جوری که بخوام بیان با قرآن مشکل بخوره راست اما اول ما بگیرم. عدبیات قرآنی در احکام اینجوری نیست نظر دارد به شما بکن تو ادبیات قرآنی گاهی مقام اراده و کراه یوریدو <تصفح> لحب کمال یوز گاهی مقام حب و بغض باید شده <متحد> نلا یوهب با توابی و یوهب با گاهی آمده مقامات فرض کن حتی مقامات تمثل برزخی در روایات زیاد داریم اینطور که نماز بخونی تو برزخ رو نماز کذایی میاد. تو مقامات آخرت مثلا من احب برنی خود معرسالله فیدراتی کنیم اینقدر از این قدید داریم یعنی شما از مقام ملاکات حساب بکنیم از مقام ملاکات تعبیر ما داریم تعبیر قانونی تا مقام حکم بغض تا مقام جعل مثل اوفو ما جعل علیکم فی من حرج اینو خوب دقت بکنیم چون ما الان دوی سال محکوم به زمان خودمونیم. این در دنیای روزی فرهنگ شده در دنیای قانونگذاری فرهنگ شده تو دنیای قانونگذاری شو هیچ قانون اساسی نید که به روح ملاکات صحبت بکنه روح و بغض صحبت بکنه هیچ ماده قانونی آن هیچ مجلسی نمیاد روح و بغض و ملاکات صحبت. روی مقامات بهشت و جهنم و برزخ راشون صحبت بکنه لذا ما یک ادبیات خاص قانونی هم به لحاظ کتاب دارید قطع کنید هم به لحاظ سنت داریم در این ادبیات قانونی به مقامات مختلف وجود داره تمام به مقام جهل ناظر نیست اینطور نیست که تمامش مقام هست مقام جهل هم هست اضافه چون ال الصلا مقام جهل هست اما مقامات دیگه هم داره مثلا در همین کتب اهل سنت گفتن که مسافر که افطار بکنه بعد آیه این طور داره و ان تسومو خیرل نکونید و کان من کانن نکون مریضن او علی سفر فی عدتون من ایامن اوخر یعنی قضا برش شما جوری نیست اینستون خارج محرم ازان روزه بگیره اینکه ظاهر آیته که جن این لسان لسان جن در ذیلش بعد میفلان میگه و ان تسومو خیرل نکون خب این لسان لسان جن هست اونا از همین لسان استفاده کردن گفتن صوم در سفر بهتر از افساره یکیش مقام مقام بهلاکات میخواد انتصوم خلاکو مسئله بیاره پس اینو خوب دقت بکنید ما الان یک مشکل مشکل نیست هر چیزی کو بذاره سبب ظال العجل اگر انسان نکته رو پیدا کرد دیگه مشکل حل میشه یک ممکن است در ادی از موارد در تعابیر رفته روی مثلا مثل و ما که به زلامندل عبید رو بگیم این ملاکاته چون ملاکاته ما بیایم هر حکمی که در شریعت دیدیم مخصی اگه تصریح قرآنی داشت به نظر ما ظلم بود برش داریم و ما رباکه خب اونجا این بحث میاد اگه این آیه نازل به واقعیات یاد باشه به مقام تشریح قبطی خب. اینه که کار رو مشکل میکنه و باید دنبال یک جوابتی بگردیم برای این که این حل بشه این مشکل به طور کلی حل بشه یک بحث اینه که آیا ما از مقام ملاکات چیکار بکنیم دو اگر لس اولاً در اصل ما گاهی در یک آیه واحده هم مقام ملاکات هست هم غیر ملاکات مثلا ارجال ار قوامون ارن نساء این مقام جهل ظاهرش اینطوره و ما این سابقا در بحث هم توضیح دیدیم مردم استاد می‌فهمند جمله اسمی در مقام انشاء نمیاد فعلیه قبول می‌کنه مثلا عاد الصلاه صاحب مستعاضه و نرابی جمله فعلیه رو قبول نمیکنه. میگه فعل ماضی و مضارع و امر نمیاد مشهور بین علما امر را نه مزاره را قبول کردند چگاهید معنای امره منم استاد جمله فعلی اسمی رو قبول نمی‌کنه زیدون قائمه فعلیه و مثلا زیدون قائمه زیدون خارجه نه فعلیه ما اصل این مطلب درست نیست واقعا مثلا الرجال خوامونه علی النساء دقت می‌کنید با اینکه جمله اسمی است این ظاهرش جهره مقام جهره الاریتو مردوده نیه یه جبه ردیه ها مردوده با اینکه جمله اسمی است در سلمت پیغمان حالا من اون بحث میشم. ار رجال قبلامون نساز ار نساز آره جهره نیستیم تو؟ بر به ما الله بعضان علا بعض این لسان ایک چیه؟ مساله همه فاسده ملاکات چون که به ما فضلالله ها خداوند در نهاد طبیعت بعضی ها رو بر بعداً تقسیم داده و به ما انفقو این انفاق تشریعه یعنی جمع شده بین مقام... وقتی تحلیل بخواید بکنید بعد از هم مقام میلاد ذکر شده به ما فضللا به ما ببینید به ما فضل الله بعضهم علاوه است و به ما انفعو پس این یک نکته ظریفی است که باید دقت بشه و من سابقه هم کردم که رو این نکته رو حالا یکی اینکه آیا ما میتوانیم با لسان جعل ملاکات چون فتغتال لا فطر فترالناس علیها لا تبدیل لخلق الله این مقام مقام ملاکاته این که مقام واقعیت از ملاکات نیست ولا لا آمورن هم فلی غیرون خلق الله این مقام ملاکاته یعنی اگر شما تغییر خلق الله دادیم پشتش ایهای شیطانیه پشتش اغلال شیطانیه خب اگر اغلال شیطانی شد و ایهای شیطانی شد واضح جل چه خواهد شد مازا بعد الحم اللزلال خواهی نفای این کار حرامه تصریح نشد تغییر خلق الله حرامه خوب خرک کنید این من بحث در اینجا میگم چون این در خیلی الان در به حساب فقه و استظهار فقهی و اینکه ما بتونیم فقه و یواشاش به قران برگردونیم خیلی تاثیر داره چون خیلی از ادبیات قانونی قرآن ادبیات خاص خودشه ما اگر بخوایم الان از این آیه مبارکه که ظاهرش مقام ملاکاته استظهار فقهی بخویم من میگم ریشه های استظهار فقهی رو خدمت ریش های استظهار فقهی اینجوریه ریشه‌های استظهار فقهی چون خلق الله امر واقعی است تغییر خلق الله به من منشیطان به امر منشیطان پس خود نتیجه گیری کنه که این تغییر خلق الله حرامه این ولا امرن هم کنه و... کنه آ... نه هم و و الانعام گوش حیوانا رو میبرن این گوش خب رو تحریمی است که بریدن گوش مراد این است که این گوشه میبرن این حیوان دیگه نمیخورن ولش کن تا بمیره خدا حیوان گوشتش میشه این تعبیر این کار گوشه حیوان رو بریدن این امر شیطانی است ایها شیطانی پس حرامه تغییر خلق الله امر شیطانی پس حرامه دقت بکنید پس در اینجا خداوند متعال یک امر فیتکوینی واقعی رو ذکر کردن زمینه ملاکش رو هم ذکر کردن اون زمینه ملاکش این امر مستند به امر شیطان به ایهای شیطان سرچینه اگر دگرگونی در نظام خلقت بشه به امر منش شیطان این حرامه خوب دقت بکنید خب اینو در بیاری. الان چکار می‌خواید بکنیم غیر از این یه تغییر خلق الله در موضوعش شب بعد عازم بحث میکنه. ما می‌خویم استزهار و حرمت بکنیم استظهار حرمت در تفسیری که من از کردن باید برگردونیم به مقام ملاکات مقام ملاقات هم به این معنا تغییر و دگرگونی خلقت به امر منش شیطان نه مقام خلقت خلق الهی به امر منش شیطان حرامه اینه میشه در ورد به غرینه یا آید دیگه داله کردیدون رو این از نظر این تفسیری که ما الان که مقدمات ما اگر بخواید بحث قانونی بکنیم یعنی ما الان در حقیقت تو روشن شد به این قرآن به جهان غرب میگیم شما نه این آیات قرط چون این اشکارندن در آیات در آیات احکام شما تو آیات احکام از دیدگاه منتسکو و قوانین روز نگاه نکنید این یک لغت خاص خودش رو گفتند کل قوم اصطلاح هر قومی را اصطلاح یک اصطلاح خاص خودش یه راه خاص خودش داره که بعد بقیه راهشون توضیح دادن بعد این یک مطلب مطلب دوم که اون باز به درد و اصول مازیاد می حالا اگر ما در آوردیم خوب دقت بکنید در آوردیم که گوش بریدن حیوان حرام از ملاک در آوردیم جعل رو از ملاک در آوردیم سوال تغییر خلق الله حرام از ملاک در آوردیم سوال آیا از نظر اصولی اطلاق داره دا یا آه؟ نه ما یا عنوان یک دلی لفظی که روشن شد بکنیم اطلاق رو هم عرض کردیم اطلاق مراد این نیست که انسان بگه مثلا احلالالوه فقط نه اطلاق این است که حکم رو بر ماهیت ببره به حیثی که نظرش به ماهیت باشه و این رو جوری الغا بکنه به حیثی که برای موارد شک و رفع شک مفید باشه رفع شک باشه بکنه اون آقا مثلا میگه اطلاق داره تغییر خلق الله شامل مثلا رشته راشی میشه خوب یک بحث کبروی من اینجا مالا کار به خود آیه آیا آ آیاتی که مثلا میگه یرید الله بکم لیوس تو مقام اراده است یحب المتطهرین تو مقام حب و بغزه انت سمو لکم تو مقام ملاقات سوال این آیاتی که تو مقام جهل نیست، تو مبادی جهله. خوب دقت میکنه. آ یا بعدن استفاده و حکم کردید، مثل همین آیه. یه بحث اصولی لطیف، این بحث کبرویه قرانه، چون این بحث نشده، خیلی و خیلی راحت در شما میتونه ما یواشاش قرآن رو بیشتر ببینیم چون مثلا گفتن ما 500 آیه درفه بیشتر نداریم. این هر چیزی که سلطی باشه بعده بالا بابا با با با تکرار کردن. اصل این 500 تا در کلمات اهل سنت بود، مال ما نیست. این نیمز اصلا طبق این تفسیر، خیلی از آیات رو میشه تو فکر کشید این که باید این 500 تا آیه باشه بحث دیگه آیا ما میتوانیم با این آیاتی که به اراده و کراحت و حب و بغض و ملاکاته اطلاق لحظی اثبات بکنیم یا نه اون که من به ذهنم میاد ذهن خود بنده رو ارزی میکنم کار به کلمان به نظر ما این آیاتی که به ملاکات ناظره، آیات و روایات آیاتی که به ملاکات ناظره اینها بیشتر ارزش و حکم عقل عملی رو دارن یعنی مصاویم با حکم عقل عملی تحسین و تربیه عقلی که اونم برگردیم به استقبال مثلا به نظر ما یعنی به عبارت اون اخرا بیش از یک دلیل لبی نمیشه بهش اثبات کرد اصلا کلن اختصار این مورد نداریم ما میتوانیم یک دلیل لبی بیشه به قرار بدیم مثلا یوریدو به بکن و یا هر جور یوریدو مثلا نیست اصلا توی این مقام نیست اینا مقامات ملاکات در حقیقت یا مقامات اراده این مقامات ملاکات در حقیقت همون حساب و هم. از طرف شارعه امضا شده با اسطوله اوتن به مکار من اخلاق اینها قبول شده لذا به ذهن بنده بوند که این صافن اثبات اطلاق هم برای اینا بسیار مشکله تفصیل بحث پردار انشاءالله یک که اون بحث رو از بیشتراشی از اون میبره کبریات بحثی قرآن شناسی انشاءالله و حتش... سلالله علا محمد قادم <مصطور> بله آقا <آور هم. مصطور> بل. حالا اون بحث دیگه ایس ما حالا حرمت رو در و بر...